فاسلی 24 روم. از همان زمانی که کوزیمو در سن دوازده سالگی به بالای درختان رفت و دیگر پایین نیامد در امبروزا گفته میشد که عقل درستی ندارد اما همان گونه که بسیار دیده شده است بعدها همه دیوانگی او را پذیرفتند و با آن کنار آمدند نه تنها پافشاریش به زندگی در بالای درختان بلکه خلبازی های بیشمارش نیز برای مردم عادی شد در نهایت او را آدمی استثنایی می‌دانستند و بیشتر در گرماگرم دوره عشق ورزیش با ویولتا شادمانی خود را به شیوه هایی بروز می‌داد که برای مردم در نیافتنی بود به ویژه آنچه در روز جشن قدیس شهر از او سر زد مایه شگفتی همگان شد بسیاری کسان حرکت او را توهینی به مقدسات خود دانستند و گفته های او را شعاری زندیقی و کفرامیز داشتند که گویا به زبان لحستانی بیان شده بود. از همان زمان چو افتاد که باران دیوانه شده است. کسانی هم بودند که گفتند اگر می شود آدمی که یک عمر دیوانه بوده تازه دیوانه شود. در گرم و گرم این اظهار نظرهای متضاد ما دیوانه دیوانه شده بود. همو که تا آن زمان سراپا پوستین می پوشید از آن پس سر و روی خود را مانند بومیان آمریکا با پرهای رنگی پرندگان گوناگون میاراست و حتی پرهایی را نیز به تن پوش خود فرو میکرد. جامعهایی برای خود میساخت که دم داشت و پوشیده از پر بود و رفتارش نیز مانند پرندگان میشد. مانند دارکوب های تنی درختان را بیرون می کشید و چنان به خود می‌نازید که انگار گنجی را دارا شده است. برای کسانی که پای درختان گرد می تا گفته های او را بشنوند و ریشخندش خندش کنند، درباره پرندگان داده سخن میداد. همون که زمانی پرندگان را شکار می کرد، ستایشگر و پشتیبان آنها شد. رفته رفته خود را پرنده می و گاه كبوتر چاهی، گاه جغد و گاه سهره می شد. سر و روی خود را به شکل این پرندگان در می و به انسانها حمله می کرد که نمی دانند پرندگان دوستان راستین آنها هستند. در نهایت روی سخنش با همه ی جامعه بشری بود و گفته هایش حالتی تمثیلی به خود می گرفت. پرندگان به دگرگونی او پی برده بودند و به او نزدیک می شدند. حتی هنگامی که کسانی در پای درخت گرد آمده بودند و به او گوش می دادند. بدین گونه برادرم می توانست، سخنان خود را با ارائه نمونه های زندهی که در پیرامونش روی شاخه ها نشسته بودند، همراه کند. این وز شکارگران اون را به فکر انداخت که از او چون تلیی برای جلب پرندگان و شکار آنها بهره بگیرند. ولی در عمل هیچ کس نکرد به سوی پرندگانی که پیرامون او مینشستند تیراندازی کند. مردم همچنان از او حساب می بردند، حتی پس از آنکه دیوانگیش آشکار شد. البته مسخرهش میکردند و همیشه در پای درختش گروهی از کودکان و بیکاره ها بودند که به ریش او می خندیدند. ولی همچنان به او احترام میگذاشتند و به گفته هایش با دقت گوش می‌دادند. درختانی که بالای آنها به سر برد رفته رفته پوشیده از برگ های دست نوشته و نیز ورقه های بزرگی شده بود که جمله ها و پند هایی از فیلسوفان گذشته را روی آنها می نوشته. همچنین چیزهای بیشماری را با ترتیب ویژه‌ای به هم پیوسته و بالای شاخه ها جا داده بود. دسته های پر، شم، داس های کوچک، تاج های گوناگون، پیکره های نیمتنی زن، تپانچه، ترازو و بسیار چیزهای دیگر. مردم ساعت به آن چیزها خیره می و می کوشیدند، آنها را پیدا کنند. به گمان من، برادرم با کنار هم گذاشتن آنها بران نبود که چیز ویژه ای را بیان کند بلکه تنها می‌خواست مردم را به فکر وادارد. می‌خواست به آنان بفهماند که غیر عادی ترین می‌تواند بسیار هم درست باشد. در همان زمان به نوشتن چندین مقاله پرداخت. از آن جمله بود. آوای توکا، نوک دارکوب، گفتگوی جغدها. نوشته های خود را میان مردم پخش می کرد. در همین دوره دیوانگی بود که حروف چینی را فرا گرفت و به چاپ اعلامیه‌های افشاگرانه و خبرنامه پرداخت که یکی از آنها نام پرسار را داشت. همه این خبرنامه ها را بعدها در ای به نام پیک دو پایان گرد آورد. یک میز بزرگ، یک گارسه حروف سربی، نورد و دیگر ابزارهای چاپو و ای پر از مرکب را بالای درخت گردویی گذاشته بود. همان همانجا نوشته های خود را میچید و چاپ می کرد. گاهی راسویی روی کاغذی که او تازه چاپ کرده بود مینشست و با دم خود مرکب آن را پخش میکرد. گاهی سنجابی یکی از حروف سربی را میدزدید و به گمان اینکه چیزی خوردنی است آن را به لانه خود میبرد. یکی از حروفی که بدین گونه از میان رفت حرف کیو بود که سنجاب ها با دیدن شکل گرد و دم آن میپنداشتن که میوه از این رو، کوزیمو مجبور شد به جای آن حرف کی را به کار ببرد. این همه شاید جالب بود. ولی به نظر من چون این می رسید که برادرم گذشته از دیوانگی رفته رفته دچار خنگی و ابلهی می شود. و این بس دردناکتر و وخیمتر از دیوانگی بود. دیوانگی چه خوب و چه بد نوعی نیروی طبیعی است. ولی ابلهی چیزی جز سستی و درماندگی نیست و به کاری نمی آید. با فرارسیدن زمستان برادرم دچار رخوتی دائمی شد. همه یه روز را چون پرندهی که در آشیانه بخوابد، در کیسه خواب خود میگذراند و تنها سرش دیده می که از کیسه بیرون بود. تنها گهگاهی در گرمترین ساعتهای روز از آن حالت بیرون میامد. و با چند خیز خود را به درخت توسکای بالای رود گهاب می رسند تا دست به آب کند. در درون کیسه خواب گاهی کتاب میخواند شبها چراغی نفتی را رو روشن می کرد. یا اینکه با خود حرف می زد. گاهی نیز آوازی را زمزمه می کرد ولی بیشتر وقتش به خواب می گذشت از خوراکی داشت که هیچ کس نمی کجاست ولی گهگاه کسی به نیکوکاری نردبانی می و کاسی از آش یا راویولی برای او می برد که او میپذیرفت و می خود. رفته رفته این باور خرافی در میان مردم پدید آمده بود که نظر کردن خوراکی به بارون خوششگون است. و این نشانه آن بود که مردم از او میترسیدند یا برایش دل می سوزندند. گمان من این است که بیشتر برایش دل می سوزندند. از سوی دیگر برای من پذیرفتنی نبود که وارث عنوان بارون روندو با نظرهای مردم زندگی کند. اگر پدر مرحوممان این را میفهمید چه حالی میشد من در این میان گناهی نداشتم زیرا برادرم همیشه از زندگی آسوده خانوادگی گریزان بود و همان گونه که پیشتر گفتم پیمانی با هم امضا کرده بودیم اما چون دیدم که به حالی افتاده است که نمیتواند خوراک خودش را فراهم کند روزی به یکی از خدمتکارانم دستور دادم که با لباس رسمی از درخت بالا برود و تکی بوغلمون و لیوانی از شراب بورگونی روی سینی برای او ببرد میپنداشتم که به خاطر پاک بندی به فلان یا بهمان اصل اعتقادیش آن خوراک را نخواهد پذیرفت ولی آن را گرفت و با میل بسیار خورد از آن پس هر بار که به فکر او میافتادیم، بخشی از خوراک خودمان را برایش میفرستادیم خلاصه اینکه که دچار انهتات شده بود خوشبختانه حجوم گرک ها پیش آمد این ماجرا را به کوزیما فرصت داد تا بار دیگر جسته ترین ویژگی های خودش را نشان دهد. زمستان آن سال یخ شد. حتی روی جنگل های ما برف بارید. گرگ های گرسنه دسته دست از کوه های آلپ پایین آمدند و به کنار های ما یورش آوردند. یزوم شکنان آنها را دیدند و به همه جا خبر بردند. مردمان امبروزا که هم بستگی را از زمان آتش سوزی های جنگل آموخته ها بودند، کسانی را به پاسداری در پیرامون شهر گماشتند تا از پیش آمدن گرگ‌های گرسنه جلو بگیرند. هیچ کس به ویژه شبها، از شهر بیرون نمی‌رفت. در امبرازا همه می‌گفتند: "حیف که بارون مثل گذشته ها نیست." آن زمستان سرد به سلامت کازی آسیب زده بود. همه ی روز را چون کرمی در پیلهش درون کیسه خواب آب از بینیش میچکید، چهرش ورم داشت و گوشش کمابیش کر شده بود. همه برای رویاروی روی با گرکا بسید شدند. کسانی که از نزدیکی بارون میگذشتند به او میگفتند. هی hey, بارون! آن وقتها تو در بالای درختها برای ما نگهبانی میدادی، حالا ما نگهبان تو شده ایم. کوزیمو چیزی نمیگفت و چشمان نیمه بسته را باز نمیکرد. انگار چیزی نمیشنی. یا نمی دانست که روی سخنشان با اوست. ولی یک بار ناگهان سر خود را بلند کرد. بو کشید و با صدایی درگ گفت گوسفند برای تاراندن گرک ها باید گوسفندهایی هایی را بالای درخت برد و بست. مردم پایین پای او گرد آمدند. منتظر بودند تا باز چیزهای بی سر و تهی بگوید و به ریشش بخندند. ولی او سینهی صاف کرد و گفت جاهای مناسب را نشانتان می دهم و در لابلای شاخه ها به راه افتاد درختان گردو و بلوطی را در نیمه راه میان جنگل و کیسارها برگزید و گوزفندان و بره را بالای شاخه های آنها جا داد حیوانها را سفت بسته بود تا نیفتند و آنها پیاپی پی بعبه می کردند سپس بالای هر کدام از آن درختان تفنگ پری را جاسازی کرد خود نیز، سراب پوستین پوشید و به شکل گوسفند درآمد و شب را به آن حالت بالای درختان گذرند و منتظر مند. همه میپنداشتن که این اوج دیوانگی اوست ولی گرگ همان نخستین شب از کوهستان پایین آمدند. با شنیدن بوی تن گوسفندان و آوای بابع آنها خود را به درختان رساندند و زوزه کشان پای آنها گرد آمدند. دهانهایشان باز بود و پاهای خود را به تننی درختان می فشردند. آنگاه بود که کزیما جست و خیز کنان به سوی آنها رفت گرگ با دیدن آن جانور که چیزی میان آدم و گوسفند بود اما پرندهوار می پرید هااج و واج می ماندند و چش به او می دوختند و او هر کدام از آنها را با دو گلوله میکش دو گلوله زیرا تفنگ همراه خود داشت که آن را پس از هر شلیک پر میکرد و تفنگ دیگری را نیز در میان شاه پنهان کرده بود گورک‌ها یکی پس از دیگری از پاد در آمدند و روی زمین یخزده زده می‌افتادند. بدین گونه کوزیمو شماره بسیاری از آنها را کشت. هر بار که شلیک می کرد، دسته گورکا سرگشته میگریخت و شکارگران دیگر بازمانده آنها را می‌کشتند. بعدها کوزیمو روایت های گوناگونی را از این ماجرا تعریف کرد. نمی‌دانم کدام یک از آنها درست است. یکی این بود در اوج کارزار خودم را به آخرین درخت رساندم چه دیدم ستا گرگ خودشان را به بالای شاخه ها رسنده بودند و داشتن کار گوسفنده را می ساختند به خاطر سرماخوردگی گیج بودم و چشمهایم تقریبا نمی دید. در نتیجه بدون اینکه متوجه باشم تا یک قدمی آنها رفتم گرگ ها که می دیدند گوسفندی روی دو پا بالای شاخه ها راه می رود به طرف من برگشتند از پوزهایشان خون می چکید تفنگم خالی بود دیگر باروت نداشتم به توفنگ دیگری هم که بالای درخت گذاشته بودم دسترسی نداشتم روی شاخه نازکی ایستاده بودم که چندان محکم نبود اما شاخه بالای سرم خوب بود پس پس رفتم و کم کم از تنه درخت دور شدم یکی از گرگ ها آهسته آهسته به طرفم می آمد با دو است شاخه بالای سرم را گرفته بودم و وانمود میکردم که دارم روی شاخه نرم و نازک زیر پایم راه میروم در حالی که اصلا پایم روی آن نبود گرگ گول خورد و جلو آمد شاخه زیر پایش خم شد و در همان حالی که او پایین می افتاد من با یک جست خودم را به شاخه بالاتر رساندم. گرگ به زمین افتاد و زوزه یک مثل سک کشید و جا به جا مرد استخانهایش شکسته بود دوتای دیگر چه شدند؟ دوتای دیگر بی حرکت مرا نگاه می کردند یک بار سربند و بالا پوشم را درآوردم و به طرف آنها انداختم یکی از گرگ ها با دیدن آن پوست سفید گوسفند جست زد تا آن را در هوا بگیرد اما تعادلش را از دست داد و او هم به زمین افتاد و گردنش شکست چون خودش را برای گرفتن یک گوسفند سنگین آماده کرده بود در حالی که پوستینی که من انداختم سبک بود یک گرگ دیگر مانده بود بله، یکی دیگر مانده بود اما چون من ناگهان هم بالا پوشم را درآورده بودم سردم شد و چنان ای زدم که زمین و زمان را تکان داد گرگ از این صدا چنان یکی خورد که از درخت پایین افتاد و او هم گردرش شکست. این بود داستان کارزاران شب برادر من. اما با حال نظاری که داشت کم مانده بود سرمایه آن شب کارش را بسازد. چندین روز با مرگ دست به گریبان بود و با هزینه شهرداری درمانش کردند که این نشانه قدردانی مردم از کاری بود که کرده بود. در بستری شده بود و پزشکان پیاپی از چند نردبان بالا و پایین می رفتند و به درمان او می پرداختند. بهترین پزشکان ناحیه را به بالینش فراخواندند. یکی پاهایش را می شست. دیگری خونش را می گرفت. مرهم به پشتش می گذاشت. چهار به تنش روغن می مالید. دیگر هیچ کس باران را دیوانه نمی پنداشت. همه او را شخصیتی برجسته و یکی از نابغه های دوران می دانستند. تا بیمار بود چونین بود پس از بهبودش دوباره اختلاف نظر مردم درباره او آغاز شد ولی دیگر می که کارهای بسیار شگرف نکند هفته نامش را همچنان چاپ می کرد اما عنوانش را تغییر داد نامش را مهردار عاقل گذاشت